ای توف اما رزوام شد ولی هی شو. هنوز زنده ایم چون میدونم خیلی یادتون به خونم تشتین انقا زندگی بهم زد که سر شدم انقا شول گرفتم شکست خوردم که صفر شدم واسه چهار تا کام جلو خیلی یاد سر شدم اسمی کنم سرفها تو ریم سل شد ترجمیدم که فکر کنم خیلیو گفتن چرا ساکتی چون ریکاپ میزنی میبینی رو دو چرخ ثابت پای دو اولی باز چشمات خون خدا به ام آدما رو بشناسون میگم اینم آدما رو بشناسو فقط آتیله رفیقا رو بنداز دور تنها با ترام مادرم با جیب خالی با پول کارگری هم میشه زندگی کرد چون بی گنام پایدار میره ولی اعدام نمیشه حاضرم پیش قاضی برم بگم گنام چی بودش خم گذاشت گنام چی بود پدر رو ازم گرفتن چرا پا گریه لکت گرفتم چرا واسه چوبی نداشتم چرا نباید مثل بقیه باشم بگو گنام چی بود بگو حک و تو بده زور میگه گفت اگو جاشک کنی زره هست کسی که حق میزره آرزوش بود جای تو باشه می تو فر نوش فابص خوردن عله میشه این غ تو توبتتم ریشه کردن و ارگز زمون نمیم باز دیگه جلو موسیقی دل نوشتم و از سر نوشتم ست بار نوشتم ست بار دیگم اگه باز به نوشتم نمیشم چون دور داده دلم داستانه ها بگم پای در دادل بارک بشیی تا ثابت نکنه از اون کمتری توی غم غضه نمیذاره بری دوست داره بگه بربختترین ولی میگذره پشت بنز میبینی ش فرش بگیریش که من خوشحالم بگم دامو پیشرفت کرد همونی که پشت ذر میزه گاهی وقتا بد تووری غصه میکنم خیلی چیز آوا هم عقده می شدن فکر می کردم عقدده ای شدن ولی من به مشکان پشت میکنم میگم اوس کریم ش شد بشیگی اگه زندگی کوف شد ککی به درک اک وای تو از یوااس بن بگوی بودم پس چی بیگم بودم هم ثابت کردی لباس حیدارو حاضر کردی دل مردم رو راضیش کردی این دل و دادی بازیش پس چی من با مشکلام رفیقم شب تا صبح پیششون میشینم این قبع هم کنار اومدیم که خوشبختی رو پاک فرموش 2019